Ilus paitsi ei järjehdä, on chadori, chenkiä, tähtsäkolarit, listarit, sitten on vähän huiskelun paitsi <laughs> sure, can I have some more? I'm gonna party for it. سلام مرگزم. لنی چه نرفتی مرگزم. هنیف دیشتب آرازو دیده با زیر شهروری از دوستان کریم کریموستان زده میگم با ماشین من بوده مرگزم. آقا سلام این سویچ خدمت شما ماشینم جا همشگیون کشه Mä oon طبعا میری تو سرق و آرازو میبیری نه سلام نه علیک نه خاطره و یادش بخیر باشه الفت دوستم بوده دوست کجا بود الفت خالته خاله کجا بود هراشتاینگ شده نشه دستوره خواهشه دل دیگه دل دیشت پسرش دادشم رو با چاقو زده دادشه من که چه بد حرف مزنی پشت هم آتفه جون دستور سادر کردی گفتم بد حرف میزنی الفت سنش از من بیشتر بود دوستم بود خواهر شوهرم بود بدی ندیدم ازش من دیدم من هم هر وقت دیدم ازش همون کاری رو میکنم که گفتی آقا نگه دارین همینجا همینجا دارین. برو خونه خودم تنهای میرم اونجا با هم باشی مهربونی کنی بهش از هم میفتی باشی بیتو بهش مهربونی میکنی قصه دروب میمیخواه دو دیاتو گفتم قصد هم دروغ نمیکنه ولی تو اردوگاه شما گلوم تر می شما منان بودی بسیت این بر رو بیابون اینجا بسیت تو بیابونه بیابون توی کبیه توی تو آون توی عمرتون توی گفتم I'm ready ها بشی توکر من تا اون خونه بادم بودم تا اون خونه بادم بودم که بسنسین اکم برسید من شروعی چجور درچ بیکنم تایی نمیخوری؟ تا اون خونه بادم بودم که زنم رب احترام خود نگه داشت احترام؟ حرف از احترام نزن که آتیش کشیدی هر هرچی احترام بی که دست ببن نزن چه آتیشی؟ های قسم دروغ اومده میان قرآن؟ قسم دروغ؟ داداش چاقو خوردی کریم ما تو بدبختی و فلات ولش کردی دارو ندارش بالا کشیدی آرازو داری میکنی عین خودت لیلا ازش گرفتی میگی چاتشی حافظ فهد رو در روی همان حنیف و سطر رو در روی همان همش هم به خاطر تو به خاطر دنیای تو به خاطر بهتر به سرت تو بکرد گندگی لات هستی اما نوست توکر با من نیستی من رو اینجا خفت هم بدی آره اتفاقا نوردم تو این خلفت خفتت بدن میخوای بشی توکر میخوای بشی من خوب نگاه کن خوب نگاه کن تای تای توکر منم گلات یا چاخو کش یا زیرونو کش یه بدبخصی که اسمش توکله یه آدمی که هیچی نداره یه آدم بی بطه نخواه توکل جدید این توکل وقتی برگشت چی نداشت وقتی برگشت هم یه دیر شده بود من نمیدونم چی گفته ما این رو هر بگیری تازه نیست به تمام کائنات دیست میکنده من گم دیدم گم دیرم وقتی برگشتم دیگه دیر شده بود واسه واسهش واسه زن و بچه داری واسه آورو داری واسه همه چه دیر شده بود واسه تا دیر میشه سادوسه نوش ها واسه تو میرسه به کلبه شوهرخوار رسول واسه من میرسه به کلبه رسول رسول وکیل واسه من مادرم. چه شد شبیه ماندنه تو چی شبیه ننته گلگیست یا شرارتت ننت دو دوزه باز بود سیر رو کش بود تا اونجا که من میدونم خدا بیام از به حروم دهنت نزاشته نمیدونم این بوی حروم های که گرفتی بوندم البته من کردم من خیلی رو آوردی یک دو با من درست صحبت کن سه من که میگم هستم برای یه چیزی اونیستم تا <تصفح> حالا ده روزو بزرگتر بلند نکردم دیگه تاملش نکنی تاثرت رو بزرگتر واش خیالینی نیست بذار همه چیز و خیر بشه رب با و کریم و تندیمش کن تقدیم نکنم مینام سراغ رسول وکیل <متصف> وکیل رسول <متصف> قره رسول وزاری جلومن رسول وکیل وزاری جلومن این تدبیرت شوهر وزاری جلومن آتف و رسول عره بدن تیشه بگیرن اینه حضور اینه تدبیرت آره آره یه قریبه بشه وکیلی این دوا فقط به بردن فکر میکنه دنبال وکیلی هم که بردن هر دو طرف پرنش باخت باشه پرندر بردی نوش جونت اما باختی مرشت ناسیزا چاق و قناف مردش هستی Ma mard khilaf آماده نیست خوانده ای چی تو آماده نیست دندولت که هر کاری میکنی زرده به شما که سفیده دستات که می نرزه چند وقت پاکی داری؟ شیستد روز خوبه شیستد و دوازده روزی که پاکی پادتن اونا زرده که باشه موروش سفید باشه دستت می‌لرزه بلرزه مهم اینه که پاکی من دل و جرأته تو می‌خوام تخصصت رو می‌خوام تدبیرت رو می‌خوام آقا رسول بی‌وسادت خون‌آریزه اوصفه دویی آتفه جون و سلامت یه دو عادت میکنه دارم بهت میگم با خون میاد با یه خون خدا بیا مرزمات از از دوره خون و خون تمام شده دور دور قانون اگه درست اجرا بشه همه رو سوار گرده قانون کنه برو جلا آتفا نقنق میکنه بد اخلاقی میکنه ولی آروم میشه یه عمر ممنون دار نیتت میشه شکل نگار هست برو جلا آزشان آره گلابه با گلابه چیزی نیست گلابه بکن بکن با با آزه جایی چیزی نیست صرف کن صحب این رو جزمن کسی حق نداره در کوچه روا کنه دادش هم دوشه پا برهنه اینجا به دو رفته ماشین داداشش رو جا گذاشته. چرا رفته اونم پا برهنه و بی ماشین و لباس شده؟ سمو سلام سارا بچه چاشم هاجم بچا میگم چی شده؟ بیچاره چی سلام کیچاپ خوردم زن چه روز زمینه اینجا خوردی زمین حالت اینجا کشش داره؟ حالش خوب نیست با گوش کنایه حالش خوب نمیشه کجا بودی دیشب تالا داره شکایت میلیسه ستار و لیلا منو خیلی وقت از شیر گرفتیم مادر خب برای همین میگم. عقلت برسه برو بیرون قرار حرف بشی نکنه یه وقت دهن کوچکتر به بد باز بشه رو بزرگتر غلط کرده دیده مادرت راست میگه دهن کچکتر رو بزرگتر باشه کی غلط کرده شیطان رجی. برو دیگه مادر اسم شما لیلا نیست برو دیگه مابا جم چشم خب حالا میشه نفس کشید بچم بچم بچم همین بود بچت چاقومی و در میره کدوم یکی بدتره چاقو زدن یا در رفتن جفتشون اما ستار نبوده آه خودزنی بوده فرح. نامردی بوده نامردی نامردی میره کریم بوستان آراز میگه شکایت همچین قرار داشتی؟ نداشتی قراردارم کردم کی داداشت کدومشون ما ست تا دارم چاوش رو زمین این خونه خوردی زمین سرت عیب کرده دب کرده داداش حالا میخوانم شکایت برسونم شکایت؟ عجب شکایت تو پشخانه کدوم سند؟ سند آراز آراز دست خط بردی رو رویت کرده دخبر <تصفيق> هر رویتی رو که تو دادگاه تعریف نمی کنن آقا کریم وقتی پای قسم سر بیاد می کنن داداش علیه داداش قسم نمی خوره زن کریم بوستان پای حق وسط بیاد میخوره بی خاله جم داشت یادم می رف خالمی بری وقتی یادت رفته چه کردن که یادم رفته بماند ام. چه کردیم جو سب کردن چه کردیم جوز خونه چگر خوردن چه کردیم جوز دندون روی جگر گذاشتن دنیا برام خرابه اگه حالت بچه بی تو اتاقت یه دقیقه دراز بکه آره اینقدر درست کشیدم که حالا به خونه داداشم عارفته. شما ریخته شما به من خودم برمیم اینقدر از خونه من نگواب جی چرا و مطمئن که تو توی دادگم و گرمی آیی؟ به میرو نرف بزنیم نه همچین محکم و مجلسی جلو آقا کریم خاله و بگو تا خیالشون راحت شه که داداش توی دادگاه علیه داداش قسم نمی... شهادت نمیده پای نمی رویا میشنوام داداش بر علیه داداش قسم نمیخوره مگه نداداش؟ پای قسم به قرآن وسطه فقط نگی قرآن عزیز تره ی خانده داشت بگه هم جوابش معلومه تو یه چیزیت هست چیز قارت کرده؟ کرده؟ پدر عاشقی بسوزه که داداش بر علیه آهدفه. داداش قسم دروغ به قرآن بخورم قسم چرا؟ دروغ چرا؟ سر به نیست برو برو قسم پر! شاهد پر! یه پر بدم بدن. هایی رفتی نرفتی یا. آهان. قمتی که لیلان پر. بعد این همه سال لیلا پاد با حالا قمت نیست به پره بره نه تا نپرونمش گمونم نپره لیلا دیگه مال دنیا نیست که بشینم نگاه کنم کسی بهش ظلم کنه به شورانش کنه. دختر بابا قبلی لیلا لیلاست نه شوخی دارم سرش نه گذشت حواست هست آراز بله آبچه دو نفر به یه نفر درسته کنارم وای میسی تا دو به دو بشیم سر به نیست میری هیچ کی جز خودم خبردار نمیشه که کجایی میگی از روز جنازه من راز چی شاهد پر سربلیس دونه نداشته پر لیلا پر مدجیون هنی اگه فکر کنی بخزن مال مال دنیاست، هست بخزن بری قریبی بچه دیناس من راست قسم میخورم خلاص. شهادت بدی نظری بدی فقط چاپوشو از دست ندادی فکره یه خونه دیگه باش فکری یه خونه وادی دیگه باشه. به اون که من سامیه داشت. نهیم. دیگه داشت نیستم. یه دوره ساخته بودن گذاشته. دوره نشستن گذاشته. حالا بعد از خواب کنی. به این منو چاوچو. بهش گفتم به پای هم پیرشید. شکایتی کریم دوستان از چاوچو میزاره جوا. کی؟ و کی از؟ من. تنها. تنمانی تنمانی من عاشقت زخمی تا آرا چون آتش در زیر خاک